عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کوچکه کتاب مقدس خوش اومدیم. در این کلاس ما به بررسی کل کتاب مقدس می پردازیم. هر دفعه یک کتاب. حالا ما به بررسی و مطالعه نامی جالب و عملی پولوس رسول به کلیسای قرانتوس می پردازیم. در این کلیسا مشکلات و مسائل فراوانی وجود داره و به خاطر اون ما می‌تونیم راه حلهایی رو برای حل مشکلات در کلیسای خودمون داشته باشیم. از خدا میخوام که گوچای روحانی شما رو باز کنه تا بتونید از این کلاس چیزهای زیادی بیاموزیم. حالا اجازه بدید که به معلم خودمون ملحق بشیم. باز هم به بررسی نامی اول پولوس به قرنتیان ادامه میدیم. در این جلسه پولس رسول به ما نشون میده که چطور با مسائلی که در کتاب مقدس به طور شفاف گفته نشده مقابله کنیم تا نظم کلیسایی به هم نخوره. پولس اینگونه این موضوع رو شروع میکنه و اما در خصوص خوراک تقدیمی به بوتتا میدانیم که همه ما اشخاص دانایی هستیم. اما دانش مایه تکبر هست. حالانکه محبت بنا می کند. آن آنکه گمان می کند چیزی میداند هنوز چنان که باید نمیدانند اما آنکه خدا را دوست میدارد نزد خدا شناخته شده است. پس در خصوص خوردن خوراک تقدیمی به بوتها میدانیم که در این جهان بت چیزی نیست و بجز یک خدا خدایی دیگر نیست زیرا حتی اگر برای مردم خدایانی چه در زمین و چه در آسمان باشد چنان که به واقع نیست مردم را خدایان بسیار و خداوندان بسیار است اما ما را تنها یک خداست یعنی خدای پدر که همه چیز از اوست و ما برای او زندگی می کنیم و تنها یک خداوند است یعنی عیسی مسیح که همه چیز به واسطه او پدید آمده و ما به واسطه او زندگی می کنیم. اما همه را این معرفت نیست زیرا بعضی تا کنون چنان به بتا خو کرده اند که هنوز همگر چنین خوراکهایی بخورند بخورن می پندارن خوراک تقدیم شده به بطا را خوردهاند و از آنجا که وجدانشان ضعیف است ملوث می شود در باب هشتم از اول قرنتیان پولس قسمت جدیدی رو شروع میکنه که ده باب رو دربر میگیره. گیره. روبرو شدن با مشکل دیگری که کلیسا در نامه به او نوشته، موضوع اصلی این قسمت هست. مسئله این بود، آیا خوردن غذای تقدیمی به بوتها توسط مسیحیان درست یا غلط؟ در ارتباط با پرسش بوتها که گناهی غیر قابل تحمل بود، گوشت‌هایی که به بوتها تقدیم می شدن، بعد از تمام شدن مراسم به نصف قیمت در بازار فروخته می شدند. فساد بسیاری در رابطه با بود پرستی وجود داشت کسانی که بودها رو پرستش می در یک گرد همایی به حرکات شهوانی دست می زدن. اونها با حرکات شهوانی سعی داشتند با بودها ارتباط ایجاد کنند و اونها را بپرستند. این پرستش کنندگان به طرز غیر قابل توصیفی فاسد بودند. بعضی از ایمانداران کلیسای قرنتوس قبل از اینکه مسیحی بشن در این مراسم پرستشی بدها شرکت می کردن. بعد از اینکه تبدیل شدن و تولد تازه پیدا کردند معتقد بودند که به هیچ وجه نباید از این گوشت ها استفاده کرد. چون این گوشت ها در یک مراسم غیرقابل توصیف گناههاود و بدپرسی آماده شدند. بقیه ایمانداران در قرنتوس کسانی که تحصیل کرده بودند و تولد تازه داشتند، و قبلن هم بوتا را پرستش میکردن، اونها به این صورت به قضیه نگاه میکردند اونها می این بوتا از چوب و سنگ و نقره و تلا درست شدن و هیچ کاری با روح القدس ندارن. با زندگی مسیحی و حقیقت زندگی در خدا که ما به اون رسیدیم هیچ ارتباطی ندارن. چون این گوشت ها به یک مشت چوب و سنگ و نقره و تلا تقدیم شدن به این معنی نیست که خوردن این گوشت ها اشتباهه. این مشکل در بین شاگردان از این سوال شروع شد آیا یک ایماندار میتونه گوشت هایی رو که به بتا تقدیم شده بخوره یا نه همونطور که پولس به راهنمایی در مورد این سوال میپردازه کسانی رو که به اندازه کافی باهوش هستند که خودشون به این نتیجه رسیدن تشویق میکنه هیچ مشکلی با گوشت که به بتا تقدیم شده وجود نداره چون اونها خدا نیستند این بتا چیزی نیستند و هیچ کاری با حقیقت و زندگی ما که در خداست ندارن پس خوردن این گوشت هیچ اشکالی نداره ولی پولس بعد از این میگه با این حال دانش همه به یک اندازه نیست بعضی ها ضعیف هستند و به اندازه شما باهوش نیستند و فکر میکنند که خوردن این گوشت ها اشکال داره همونطور که پولس با این مسئله روبرو میشه راه حلی ارائه میده او میگه مهم نیست که چه چیزی درسته و یا غلط. مسئله اینه که شما چقدر برادر ضعیف خودتون رو دوست دارید که فکر می‌کنه خوردن گوشت قربانی جایز نیست عیسی مسیح اونقدر او رو دوست داره تا براش بمیره تو اونقدر داری که به خاطر او از خوردن گوشت بگذری در اول قرنتیان باب 8 9 و ده پولس همون موقعیتی رو داره که در رومیان باب 14 داره پولس میگه این مشکل در بین شاگردان هست. مثلا زمانی که در رومیان به راهنمایی می‌پردازه میگه این مشکلات باید از طریق وجدان، عقیده، در نظر گرفتن شرایط و کمک به برادرانی که مثل شما به قضیه نگاه می‌کنند حل بشه. پولوس دوباره همون موقعیت رو که در رومیان 14 داره اینجا هم داره. مهم نیست که چه چیزی درسته یا غلط. مسئله اینه که شما چقدر برادرتون رو که از نظر شما اشتباه فکر می‌کنه دوست دارید؟ پولس میدونه که این مسئله بحثنگیز خواهد شد. پولس خودش مدافع آزادی روحه. او از شریعت گرایی نفرت داره همونطور که وقتی رساله او رو به گلاتیان می میبینیم. او دوست نداشت که مردم دنبالش بیان و به کسانی که باعث ایمانشون شده بود بگه خب اینجا این کتاب احکام هست. تو این کتاب در مورد احکام زندگی مسیحی نوشته شده. اینجا چند قلم از این بکن نکن ها نوشته شده. اگر شما می‌خواهید که ایماندار باشید فقط کافیه که متعلق به مسیح باشید. پولس از این حرکت متنفر بود به این خاطر که او فکر می‌کرد این نقش آزادی است که ما در مسیح داریم. خداوند روح است و هر جا روح خداوند باشد آنجا آزادی است. پس پولس پیرو افراط و تفرید در مسائل نبود. پولس میتونست به جای اینکه جواب سوالات اونها رو در مورد گوشت قربانی شده مقابل بوتها جواب بده سوال دیگه ای مطرح کنه چرا باید آزادی من در برادر ضعیفتر من محدود بشه؟ به این خاطر که بعضی از برادران احمقند به این خاطر که بعضی از برادران قدرت و توانایی فکر کردن رو ندارن چرا من باید آزادی خودم رو محدود کنم؟ آزادی من در روح خداست و این برای من مهمه این مسئلهی ای هست که پولس در باب 8، نه و ده این نامه به راهنمایی در مورد اونی پردازه پولس در این سباب در مورد این مسئله راهنمایی میکنه که نشان دهنده اینه که این مسئله چقدر مهمه مخصوصا اصولی که در راه های الهام گرفته پولس دیده میشن پولس این اصول رو با قرنتیان در میون میذاره پولس مینویسه این مسئله و دیگر مسائل باید توسط این سه اصل حل بشن اولین اصل اینه جلال خداوند چیست این به این معنیه که دیگه چه چیزی درسته یا غلط مهم نیست ولی جلال خدا چیه دومین اصل اینه نجات انسان منفعت دیگران در اینه که نجات پیدا کنند نجات انسان چیزیه که باید مورد توجه قرار بدید به این خاطر که این موضوع باعث جلال خداست سومین اصلی که پولس میگه اینه طالب منفعت خودتون نباشید این سه اصل در پایان باب دهم ده به ما داده میشه جایی که پولس نتیجه گیری خودش را از این مسئله با ما در میون میذاره بسیاری از مردم به مسیح ایمان دارند و خودشون رو متعلق به مسیح میدونن ولی بلوغ کافی برای درک این سه اصل رو ندارن هرچه که شما میخورید یا نمیخورید هر کاری که میکنید کاری رو انجام بدید که باعث جلال خداوند بشه و مسئله این نیست که چه چیزی درست یا غلط مسئله این نیست که شما چه کاری رو درست میدونید یا غلط؟ مسئله اینه که جلال خدا در چیه؟ مسئله اینه که جلال خدا در نجات جهانه؟ پس دومین اصل اینه که شما باید به نجات مردمی که به شما و روش زندگی شما نگاه می کنند فکر کنید. این اصلیه که پایه تمام فلسفه هاست. مطمئن بشید که خودخواهانه دنبال منفعت خودتون نیستید. حفظ کردن نفس اولین قانون تمدنه. این طریقیه که جهان به اون نگاه میکنه. انسان گناهکار به صورت کاملا خاصی خودپرسته. اونقدر گناهکاره که فقط خودش رو میپرسته. او هر چیزی رو که وجود داره برای خودش میخواد. او مرکز جهان خودش هست. هر چیزی که انجام میده بر اساس تفسیر این اصله. تاثیر این بر خودم چیه؟ چی در این بین آید من میشه؟ فلسفه دنیا رو میشه در یک کلمه خلاصه کرد. بدست آوردن. اما فلسفه مسیح و فلسفه پولس که اینجا با ما درمیون گذاشته شده در یک کلمه خلاصه میشه ایسار ایسار به معنی دادن چیزی به کسی هست بخشیدن به خدا چیزی رو به انسانی ببخشید چون امکان داره اون انسان نجات پیدا کنه اولویت یک شاگرد مسیح نباید این باشه که دنبال منفعت خودش باشه شما چکها و برگه های زمانت مسیح هستید شما آنقدر آزاد نیستید که به دنبال خودخواهی خودتون باشید در باب نهم در مرکز اصلی این سباب پولس قسمت ای رو در مورد بینش عظیمی که در فلسفه خدمتش مینویسه به ما ارائه میده در چهار باب اول این نامه پولس چند قسمت بزرگ رو با ما در مورد جنبه کاریزماتیک و تأثیر گذار خدمتش در میون میذاره اینها قسمت‌های زیبایی هستند، مخصوصا در باب یک و دو با این حال در باب نه همونطور که پولس به راهنمایی این مشکل میپردازه، این گنج روحانی کوچک رو با ما در میذاره می که باعث میشه ما فلسفه خدمتش رو درک کنیم. زیرا با اینکه از همه آزادم، خود را قلام همه ساختم تا دیگری بیشتر را دریابم. نزد یهودیان چون یهودی رفتار کردم تا یهودیان را دریابم. با آنان که زیر شریعتن، همچون کسی که زیر شریعت هست رفتار کردم، تا آنان را که زیر شریعتن دریابم، هرچند خود زیر شریعت نیستم، نزد بی همچون بی رفتار کردم، تا اونها رو دریابم، هرچند خود از شریعت خدا آزاد نیستم، بلکه به شریعت مسیح پای بندم با ضعیفان ضعیف شدم، تا زوافار رو دریابم، همه کس را همه چیز گشتم. تا به هر نفس بعضی را نجات بخشم یادتون میاد که وقتی داشتیم کتاب رومیان رو بررسی میکردیم در اولین بابها ها پولوس گفت اول از همه من خود را چه به یونانیان و چه به بربرها چه به حکیمان و چه به جاهلان مدیون میدانم. از این رو اشتیاق بسیار دارم که شما را نیز که در روم به سر میبرید بشارت دهم در درجه دومو میگه من مشتاقم یا آمادهم تا به روم بیایم و هر کاری رو که در بقیه جاها انجام دادم در اونجا هم انجام بدم. بعد مینویسه من از انجیل آری ندارم. پولس فلسفه خدمتش رو به ما میده و او دوباره اون فلسفه رو اینجا با ما در میون میذاره. پولس مینویسه من آزاد خلق شدم. حالا در اون زمان همه آزاد خلق نشده بودن. در اون زمانی که پولس نامش رو به رومیان مینویسه، درصد زیادی از مردم در بردگی به دنیا اومده بودند. وقتی که اون نامه اولش رو برای کلیسای قورنتوس می نویسه، این قضیه در قورنتوس هم صادق بوده. خیلی از مردم قورنتوس نمی که آزادی یعنی چی؟ اونها برده به دنیا آمده بودن. اونها باید برده می موندن. خب پولوس میگه من آزاد متولد شدم. ولی با این حال خودم رو قلام دیگران ساختم. من قلام تمام کسانی شدم که با اونها برخورد داشتم. من برده اونها شدم. او همچنین میگه من قلام هر کسی که دیدم شدم به این دلیل که باید هر کاری که میتونم انجام بدم من به هر حال باید اون شخص رو خدمت کنم تا فرصت این رو داشته باشم تا مسیح رو بهش معرفی کنم. اگر او یهودی بود من خودم رو با هویت یهودی او وفق میدم. من یهودی میشم تا بتونم بر اون یهودی پیروز بشم. همونطور که گفتم پولس مدافع آزادی بود. آزادی که ما در روح خدا داریم. او در اجرای شریعت افراد نمی کرد ولی میگه برای کسانی که پایبند شریعت هستند من تبدیل به کسی میشم که پایبند شریعته. امکان داره اینجوری بر کسانی که پایبند شریعت هستند پیروز بشم. اگه اونها در اجرای شریعت افراد می کنن با اینکه این نوع شخصیت خیلی از شخصیت من دوره ولی من تبدیل به یک افرادی میشم. از اونجایی که من باید این کار را انجام بدم به صورت کسی در میام که افراتیه و شاید از این طریق بتونم بر این اشخاص افراتی پیروز بشم. بعد پولوس برای کسانی که به قانون پایبند نیستن می نویسه. مثل بربرها، کسانی که احساس مسئولیت اخلاقی نمی کنند فاسدان و هر اون چه که شما می خواید اسمش رو بذاری. کسانی که کتاب رو به کنار گذاشتن و در کل به هیچ چیزی تعهد ندارن. او می گه همچون بیشریعتان همچون بیشریعت کردم. تا آنان را که بی‌شریعت هستند دریابم. اینجا پولس یه پرانتز گذاشته و میگه هرچند که خود از شریعت خدا آزاد نیستم، بلکه به شریعت مسیح پای بندم. معنی این تفسیر در فرهنگ ما میتونه این باشه. من به هر جایی میرم تا انسانها رو نجات بدم. ولی نمیتونم به یک مشروب فروشی و یا به یک خانه فساد برم. منظور پولس اینه که او درسته که آزاده، ولی آزادی او محدود به اینه که او از قوانین آزاده با این حال او میگه من این تعدیل رو انجام میدم و تا جایی که میتونم شبیه اون انسان میشم پولس دوباره میگه با ضعیفان ضعیف شدم تا ضعیفان را دریابم همه کس را همه چیز گشتم تا به هر نحوی بعضی را نجات بخشم منظور پولس اینه که ضعیف یعنی کسی که قابلیت تفکر و احساس تو رو نداره شاید خدا شما رو با یک ذهن بسیار بزرگ و روشن برکت داده اون وقت شما میتونید به مسئله ای فکر کنید و خیلی شفافون رو بفهمید با این حال همه این توانایی رو ندارند که مثل شما به وضوح به اون موضوع نگاه کنند پولس این قرنتیانی رو که ذهنی باز دارند تشویق میکنه مردمی که عتیه روشن فکری دارن ولی او میگه همه انسانها دانش یکسانی ندارن همه به یک اندازه باهوش نیستند بعضی ها ضعیفند حالا که اونها ضعیفند میخواید که شما هم مثل اونها ضعیف بشی؟ این راهیه که امکان داره شما بر تفکر اونها پیروز بشید پولس اینطور نتیجه گیری میکنه همه کس را همه چیز گشتم تا به هر نحوی بعضی را نجات بخشم این همه را به خاطر انجیل میکنم تا در برکات آن سهیم شوم معنی این آیه اینه اگه شما تصمیم گرفتید برای معرفی مسیح به گینه نو برید نباید با رفتن به اونجا باعث آزارشون بشید بلکه باید اول فرهنگ اونجا رو یاد بگیرید اگه توجهی به فرهنگ اونها نداشته باشید کاری می کنید که اونها ناراحت بشن و بعد متعجب میشید که چرا اونها به مسیح ایمان نمیارند شما باید فرهنگ اونها رو مطالعه کنید باید درک کنید که چه چیزی برای اونها مهمه باید خودتون رو با اونجا وقف بدید و بعد به اونجا برید یادتون نره که برای اونها شما یک خارجی هستید اگه اونها کارها رو مثل شما انجام ندادن به اونها نگید که اونها کند ذهنند به این دلیل که اونها مثل شما کارها رو انجام نمیدن شما باید خودتون رو وقف بدید خادمها باید فرهنگ رو مطالعه کنن تا بتونن خودشون رو وقف بدن این بخشی از فلسفه خدمت پولس رسوله اگه میخواید حقیقتی رو درباره برادران ضعیفتر خودتون درک کنید به چیزی فکر کنید که فکر میکنید درسته ولی بقیه مردم اونطور که شما فکر میکنید فکر نمیکنن و ایمان دارند کاری که شما میکنید اشتباهه. عکس عمل ما در مواجهه با حرف این برادران ضعیف چیه؟ آیا میگید خب اگه کاری رو که انجام میدم قبول ندارید پس روتونو بکنید اونور؟ من افرادی رو میشناختم که به من میگفتن اگه برادر ضعیفتر ما کاری رو که ما انجام میدیم قبول نداره روشو بکنه اونور. این چیزی نبود که پولس میگفت. پولوس می گفت با ضعیفان ضعیف شدم تا ضعیفان را دریابم. همه را همه چیز گشتم تا به هر نح بعضی را نجات بخشم وقتی با مسئله برادر ضعیفتر مواجه میشید مردم غالبا میپرسند حد دو مرز کجاست حد دو مرزی وجود نداره در رومیان باب به 14 پولوس به این مسئله میپردازه و میگه از این رو اگر آنچه می خورم سبب لغزش برادرم می شود تا ابد گوش نخواهم خورد تا باعث لغزش او نشوم وقتی پولس به پایان این بخش از اول قرنتیان میرسه می نویسه من تلاش خواهم کرد طوری زندگی کنم که باعث لغزش کسی نشوم یهودی یا غیر یهودی فرقی ندارد کسانی که در کلیسای خداوند هستند من تلاش خواهم کرد طوری زندگی کنم که باعث لغزش کسی نشبم. می میخوام از شما بپرسم چقدر سخته که بخواید تا بر تفکرات برادر ضعیف خودتون پیروز بشی عیسی به خاطر او جانش رو داد تا نجاتش بده آیا میتونید از چیزی که فکر میکنید درسته به خاطر برادر ضعیفتون بگذرید؟ این چیزیه که باید عمیقا بهش فکر کنید. اینجا چیزی به اسم رنج کشیدن به خاطر صلیب وجود داره. به این دلیل که شما با مسیح یکی شده اید، باید برای بعضی از مردم فدا بشید. در بعضی از فرهنگ ها امکان داره حتی شما رو به زندان بیاندازن. شما نمیتونید کاری در این باره انجام بدید. در بسیاری از قسمت جهان مردم به خاطر ایسای مسیح شکنجه میشند و رنج میکشند. این بخش از اول قرنتیان و باب چهاردهم رومیان در مورد رنج کشیدن به خاطر سلیب نیست. این بخش از کتاب مقدس در مورد رنج کشیدن به خاطر برادران ضعیفتره. وقتی این اصل پولس در مورد برادر ضعیف مطرح میشه ما اغلب این سوال را میپرسیم. آیا اجازه میدید که کل زندگیتون توسط برادر زعیفتر کنترل بشه؟ آیا شما اونقدر به وفق دادن خودتون ادامه میدید تا او همینطور ضعیف و زعیفتر بشه؟ اولین اصل از سه اصلی که پولس با ما در میون میذاره اینه جلال خدا اول شما باید به خدا جواب بدید و تمرکزتون بر امور خداوند باشه اول امور خداوند قرار داره اگر شما امور خداوند رو بخواین اگر شما واقعا بخواین که به برادر ضعیفتر محبت کنید و بر تفکرات او پیروز بشید خدا به شما نشون میده که کی باید خودتون رو با برادر ضعیفتر وفق بدید خواه افراتی باشه خواه مقدس خدا به شما نشون میده که کی خودتون رو وفق بدید یا ندی شما باید جلال خداوند رو بخواید پولس فلسفه خدمتش رو در بابهای 8 9 و ده از اول قرنتیان با ما در میون میذاره که اون رو برای شما هجی می کنم. میم ه ب ته. یعنی محبت در یک کلام این فلسفه خدمت پولسه تمام باب های اول قرنتیان به سمت باب سیزده هدایت میشن جایی که پولس با ما درباره محبت آگاپه صحبت میکنه اگرچه پولس تمام راحل های فوق خودش رو درباره مسائل و مشکلات ایمانداران قرنتوس در باب های جداگانه این نامه به ما میده محبت راه حل تمام مشکلاتی هست که پولس در اول قرنتیان به راهنمایی اونها پرداخته. در باب یازدهم از نامه پولس به قرنتیان پولس به راهنمایی دو مسئله می پردازه. اولین مسئله جایگاه زنان در کلیسا است. پولس درباره جایگاه زنان در کلیسا در نامه به افسوسیان بیشتر صحبت کرده. خیلی از مردم فکر می کنند که پولس مخالف زنان هست. بعضی از زنان می من پولوس رو دوست ندارم. اگه شما فرهنگ‌های رو مشاهده کنید که هیچ وقت در کتاب مقدس با اونها برخورد نداشتیم، می‌بینید که نقش زنان خیلی اسفناک. من این چیزها رو در فرهنگی ابتدایی دیدم که باعث میشه آدم شوکه بشه. اگه شما زنی رو ببینید که از یک سینهش خوک شیر میخوره و از سینه دیگرش بچه، اگه شما فرهنگ‌های رو ببینید که زنان باید تمام این کارها رو بکنن، جایی که زنان چوب و آب حمل میکنند، جایی که زنان در مزاره کار می جایی که مردان فرقی بین خوابیدن با زنشون با خوابیدن با یک خوک نمیذارن، جایی که زنان حق درمان مساوی با مردان رو ندارن، وقتی شما اینها رو ببینید متوجه میشید که جایگاه زنان میتونه در جایی که اسم مسیح و بشارت انجیل مسیح پذیرفته نشده چقدر اصفناکه. وقتی گروه ترجمه کنندگان کتاب مقدس به فرهنگ‌های بدوی رفتند و کتاب مقدس رو ترجمه کردند و به اونها تعلیم دادند، باعث تغییرات انقلابی در اون فرهنگها شدند. یکی از محصولات اون انقلاب خیلی سخت و بنیادی بود که ارزش و جایگاه زنان رو تغییر داد. جایگاه زنان مثل جایگاه مردان عالی شد. پولس می‌نویسه که در قسمت‌های مختلف کتاب مقدس جایگاه زنان باید عالی باشه. پولس تعلیم میده که زن با مرد برابره. وقتی پولس نامه خودش رو می نویسه، او با توجه به فرهنگی که اون کلیسا در اونش قرار داشت به بهترین نحو در مورد جایگاه زنان راهنمایی میده. پولس در مورد تصاوی زن با مرد در قوانین و عمل اونها چیزی نمیگه. او میگه در اینجا تفاوتهایی بین زن و مرد وجود داره. این باید خیلی مشهود باشه، بیولوژیکی تنها تفاوت اصلیه. این تفاوت تفاوتهای دیگه ای را هم به دنبال داره. اگر شما یک زن هستید و با یک مرد ازدواج کردید شما نیاز دارید تا مرد خودتون رو درک کنید. یک مرد مثل یک زن فکر نمیکنه، احساس نمیکنه، پرستش نمیکنه و و عمل نشون نمیده. این تنها فرق اساسی بین مرد و زنه. بر اساس صحبتهای روانشناسان برجسته کلیدی که باعث میشه شما یک رابطه شاد در ازدواجتون به عنوان یک زن و مرد داشته باشید اینه که همدیگر رو درک کنید مادر من یازده تا بچه داره او همیشه از این جمله استفاده میکرد. اگه مردی قرار بود بچه به دنیا بیاره او تنها یک بار این کارو میکرد. چون مردها حاضر نیستند برای بار دوم این کار رو انجام بدن مردان نمیتونند بچه به دنیا بیارن چون ساختار مرد برای بچه به دنیا آوردن طراحی نشده در این تفاوتی وجود داره یک فرق عمل کرد و نقش که با تفاوت بیولوژیکی شروع میشه اگه زوجها هر دو مثل هم بودند پس یکیشون غیر ضروری و اضافه می بود با فیض خدا ما دقیقا مثل هم نیستیم این به این معنیه که هر دو نفر ضروریاند، اگه زنان مصمم بودند که شبیه مردان باشند اونها خودشون رو غیر ضروری می‌کردند البته که این اتفاق نیفتاده و اونها دقیقا مثل مردها نیستند پس اونها همیشه برای زندگی ضروری هستند همونطور که شما تعلیمات پولس رو در بخش جایگاه زنان میفهمید در آیه 6 از باب 11 اول قرنتیان پولس به ما یک اصلی رو میده که اون در تمام گفتگوها و تعالیم پولس راجب جایگاه زنان ذکر شده. پولس می‌نویسه اگر زنی سر خود را نمی‌پوشاند، پس موهای خود را بچیند. و اگر برای زنی شرم‌آور است که موهایش را بچیند یا بتراشد، پس باید سر خود را بپوشاند. چیزی که پولس میگه اینه در شهر قرنثوس و در اون روزها اگر زنی فاحشه بود، موهای سرش را کوتاه می‌کرد و اونها رو نمی‌پوشوند. او موهای کوتاه کرده داشت مثل بسیاری از زنان امروز. من این را از پدری شنیدم که به خاطر درست لباس نپوشیدن دخترش این را بهش میگفت. اگه چیزی رو نمیفروشید پس چه نیازی به تبلیغات هست؟ در شهر قرنتوس اگر زنی موهاش رو نمیپوشوند و اونها را کوتاه میکرد به این معنی بود که او داره تبلیغات میکنه و به این ترتیب میدانستند که اونها فاهشه پولوس اینجا به ما یک تفاوت فرهنگی رو یادآور میشه. پولوس برای کسانی مینوشت که ایماندار بودند، زنانی که روحانی بودند. او میگه اگه شما در فرهنگی زندگی میکنید که موهای کوتاه برای زنان و بدون هجاب گشتن در اماکن عمومی یک شرم به حساب میاد، پس بذارید که موهاتون بلند باشه و اونها رو بپوشونید. اگه در فرهنگ شما کوتاه بودن موها یا بیهجاب بودن اونها مشکلی نداره این تعلیم پولس رو میتونید ندیده بگیرید بیشتر تعالیمی که پولس درباره زمان و جایگاه اونها میده بستگی به فرهنگ شهر قرنتوس داره با این حال به بهانه کاربرد فرهنگی هر چیزی رو که پولس درباره زنان میگه نباید کنار گذاشت چون همه چیز هم به فرهنگ مربوط نمیشه حقیقت در اصولی که آموزش داده میشه نهفته است پولس درباره زنانی صحبت میکنه که میخوان با حجاب یا بی حجاب در فرهنگ مدیترانه‌ای زنان از چادر استفاده میکنند امروزه این حرکت در بعضی از فرهنگ ها اجباری شده وقتی پولس درباره پوشیده بودن و نبودن سر زنان صحبت میکنه او درباره زنانی که در کلیسا کلاه به سر میگذاشتن صحبت نمیکنه بعضی از تعالیم پولس باید به صورت فرهنگی تفسیر بشه با این حال بعضی از تعلیمات پولس باید جایگزین فرهنگ بشه. همونطور که پولس در باب پنجم از نامش به افسوسیان میگه که الگوی ازدواج تنها مسیح و کلیساست. دومین مسئله که پولس در اول قرنتیان باب 11 به اون میپردازه مشکل شرکت ناشایسته در شام خداونده. با توجه به رسومی که در قرنتوس بوده به دلیل راهنمایی پولس درباره این مسئله ما یک تعلیم تلایی رو از پولس رسول دریافت کرده‌ایم تمام راه حل‌هایی که پولس در مقابله با مشکلات و مسئله ها در نامه خودش به کلیسای قرنتوس میده مثل یک جواهر برای ما میمونه همونطور که پولس اصلاحیه خودش رو در نامه به قرنتیان میده تمام این اصلاحیه ها تبدیل به اصلاحیه های الهام گرفته میشن که باعث میشه زیباترین بخش کتاب مقدس رو تشکیل بدن تمام اینها به خاطر مشکلاتی که در کلیسای قرنتوس وجود داشته بارها شده که از خادمتون در مراسم اشای ربانی یکشنبه شنیدید که میخونه زیرا من از خداوند یافتم آنچه را به شما نیز سپردم که ایسای خداوند در شبی که او را تسلیم دشمن کردن نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و فرمود این است بدن من برای شما این را به یاد من به جای آبرید. به و همین سان پس از شام جام را گرفت و فرمود این جام عهد جدید است در خون من. هر بار از آن می نوشید به یاد من چنین کنید. زیرا هرگاه این نان را بخورید و از این جام بنوشید مرگ خداوند را اعلام می کنید تا زمانی که باز آید. این قسمتی از اشاع ربانی هست که اگر قرنتیان مشکلاتی در رابطه با مراسم اشاع ربانی نداشتند، ما امروزه این قسمت را نداشتیم. ظاهرا مشکل اونها این بود که قبل از شام خداوند جشنی به پا میکردند به نام جشن محبت و ظاهرا اونها هر شب این جشن رو به پا میکردند جشن محبت به این صورت بود که هر کس غذای خودش رو می آورد و کسانی که ثروتمند بودند غذاهای زیادی رو می آوردند ولی اونها غذاهاشون رو روی یک میز نمی و با بقیه شریک نمی شدند کسانی که ثروتمند بودند پرخوری میکردند و مقدار زیادی شراب می نوشیدن در حالی که کسانی در کنارشون بودند که فقیر بودند و غذای ناچیزی برای خوردن داشتند این خیلی سخته که تصور بکنیم این چیزها در مراسم عشای ربانی اتفاق بیفته ولی یادمون باشه که این اتفاقات در کلیسای اولیه قرنتوس رخ میداده. بسیاری از افراد قرنتوس نوشیدند و مست می‌کردند بعضی از افراد اصرار دارند که در عهد جدید نوشیدنی که در مراسم اشاع ربانی استفاده می شده آب انگور بوده و نه شراب من همیشه به این افراد میگم پس معلومه که اونها باید کلی آب انگور میخوردن تا مست بکنن قرنتیان مست میکردند و این نشون میده که اونها در مراسم جشن محبت و در اشاع ربانی شراب میخوردن. پولس با این مشکلات این گونه برخورد میکنه مشکل خودخواهی مشکل بی اهمیت بودن برادران و خواهران و بعد اساس اون یعنی ضرورت معنی شام خداوند پولس در ضمن این حقایق بسیار زیبایی به ما میده برای مثال او به ما میگه شام خداوند دو بود داره البته که اینجا بود عمودی گرفتن اشا با مسیحه این چیزیه که واقعا در این مورد وجود داره با این حال پولس دومین بود از مراسم اشای ربانی رو در قسمت اصلاحی با ما در میون میذاره بود افقی این دلیلیه که چرا پولس میگه اجازه بدید بقیه قبل از شما در مراسم شرکت کنند چرا شما باید صبر کنید تا دیگران این کار انجام بدن در حالی که شما میخواین تنها با عیسی این مراسم را اجرا کنید چه فرقی داره که کی اینجاست و کی نیست عیسی به ما میگه که شما تنها با عیسی اشا نمیگیرید بلکه با خواهر و برادران خودتون هم این کار را انجام میدید بر اساس حرفهای پولس مراسم اشاع ربانی دو بود داره بود عمودی و بود افقی همونطور که پولس درباره باره عمودی اشای ربانی صحبت میکنه به ما تعلیمی میده که معمولاً بد جا افتاده پولس می پس هر که به شیوهی ناشایسته نان را بخورد و از جام خداوند بنوشد مجرم نسبت به بدن و خون خداوند خواهد بود حالا به این دلیل کلمه ناشایست رو یادآوری کردم که خیلی از افراد اعتقاد دارند که نباید در اشای ربانی شرکت کنند چون نالایقن مسئلهی که مورد تاکید پولسه اینه که نباید با یک رفتار ناشایسته شرکت کنید چون دیگه اسمش رو نمیشه گذاشت اتحاد شایسته اشاع ربانی به ما میگه که مسیح شایستگی داره و ما شایسته نیستیم هیچ زن و مردی بدون فیض خدا شایسته نیستن طور که پولوس تعالیم اصلاحی خودش رو در خصوص اشاع ربانی با مادر درمیون میذاره، مشاهده میکنید که او یک تعلیم بسیار زیبا به ما میده. بعضی از اونها واقعا اند پولس میگه، زیرا هر که بدون تشخیص بدن بخورد و بنوشد، در واقع محکومیت خود را خورده و نوشیده است. از همین روز که بسیاری از شما ضعیف و بیمارند و شماری هم خفدند. این یک حقیقت العاده است اما در باب یازده حقیقت زیبای دیگری هم وجود داره که دو بود مراسم اشاء ربانی رو نشون می ده. آیا خودتون رو مورد بررسی قرار دادید؟ آیا ایمان دارید که با مرگ عیسی مسیح به های گناهان شما پرداخت شده؟ آیا ایمان دارید که او پس از سه روز از مرگ قیام کرد؟ آیا ایمان دارید که او بدون هیچ گناهی مجازات شد؟ اگر نه، من از شما دعوت می کنم به کاری که او برای شما انجام داده اعتماد کنید همین الان به او اعتماد کنید و او رو پیروی کنید دانشجویان و شاگردان عزیز از شما ممنونم برای اینکه شاگرد وفادار خدا با ما در دانشکده کوچکه کتاب مقدس بودین حالا شک نکنید که اینجا در بین ما کسی هست که به صحبت ما گوش داده در حالی که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده ما اعتماد نداره. اون به این دنیا اومد تا زندگی شما بهتر باشه. اون به جای شما مرد و دوباره قیام کرد و اثبات کرد که خداونده. من شما رو تشویق می کنم که تصمیمتون رو به تاخیر نندازید. به اون همین الان اعتماد کنید. برای شمایی که تصمیم گرفتید که متعلق به عیسی باشید، معموریت بزرگ عیسی رو بیاد داشته باشید که بروید و دیگران را شاگرد سازید تا برنامه دوباره در قدرت خداوند و نجات دهنده ما شاگرد بسازید.